هم فداته بهار بہار اہل کہیں کرامت نکوس تو حسرت نما سے دل تو دل لطافت یاسه شراره خشمه شبیه عباسه لطافت چشمه لطافت یاسه دل سختگان عاشق سلام اصر اندوهبار هشتمین روز از ماه خونه و آسمان دلها عبری و فضای چشم ها بارونیه ما رو در عضای حضرت سید الشهدا علیه همراهی بفرمایید از مشرق سرخ دیده دل سر میزند خون خنده به برق برق خنجر میزند گر فضا معتر آنگاه كه تیغ سه به پیشانی اکبر میزند آخرین صبح زندگی من, من. آخرین صبح زندگی من نبابا بوسیدی بهمیدی من چقدر پشنمه یارو نفست دست و چاره کن نج زنای هزاران مرتبه شکر که امروز هم در هشتم محرم سال 1435 هجری قمری توفیق داده تا عزادار و سعودوار حضرت عبا الحسین علیه سلام باشیم. در بخشی گفته او خواهیم کرد با حجتالستان و المستمین استاد لاجه بردی درباره خطبه منای حضرت عبا الحسین علیه سلام بخشی با کاروان کربلا همراه میشیم و میشنویم سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری رو درباره باره امروز قیام ابودالداله سلام و بخشی درس‌های عاشورایی است که از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد دهشری میشنویم بخش رو این درس از برنامه میزبان حجت الاسلام و المسلمین استاد داجوردی هستم با سلام می به شما خیلی خوش آمدید خواهش می کنم بسم الله الرحیم من هم خدمت دی و, و همه دوستان و شنوندگان برنامه شما عرض سلام و دارم. این اگه هم را خدمتشون تصدیت عرض می در خدمت شما. سلامت بشید. ما هم تسلیت میگیم به شما و همینطور به همه شنوندگان گرامی و امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشند. اسماعیل زویه الله فقط برای ابراهیم خلیل یک پسر بود سالیان دراز از او دور بود اما تو اگر برای حسین علیه السلام یک پسر بودی باز هم حق با پدر بود تا در قربانی شدرت بگوید پس از تو خاک بر سر دنیا اما تو قلب حسین بودی و خلق و خلقت یادآور جدش رسول خدا چقدر فراغ تو سنگین است برای پدر خداوند در این مصیبت جنسوز به حسین صبر جمیل و اجر جزیل عطا کند بالم پسره، خامچو هلع نمپسره، دلم پره شلوره، اذان بگو دوباره، دلم پره شلور. الی علی حسین علی حسین علی پس و به مناسبت ایام سجواری عبا عبدالله علیه السلام و انشاءالله که از هاتون در رسای حضرت, حضرت علی اکبر علیه السلام مورد قبول و حضرت حق باقی شده باشه. خب دوستان گرامی گفتگو کنیم با حجتورستان و مستمین استاد لاجه وردی خطبه منا و از زبانشون بیشتر بشنویم. آیه لاجه در بحثی که روزهای گذشته داشتیم به روح اصابه رسیدیم و حالا حقی که از عمه و از زعفا در حقیقت پایمال شده بود توضیح بیشتری هم دادید که چی بود؟ امروز بحثمون باز ادامه همون حسابه هست یا نه مطلب جمع راز از کنم خدمت شما که بحث ادامه و این که همزد اصابه رو جایگاه اصابه رو مشخص کردن بیانه. و در حقیقت در فقره اول جایگاه روحبان و ربانیون رو وقتی ما با عظمت شعنی که دارن و اینا اگه کار خودشون رو انجام ندن جامعه به کجا خواهد رسید اصابه هم گروه های قدرتمند و تأثیر گذار و جریاناتی که باید مدافع باشند از بله. در تبین کردن که شما چه کار میتونید بکنید و چه کار باید بکنید و اینکه در جایگاه خودتون اگر ننشینید و حق این مرو استخفاف داشته باشید و حق ذعفا رو ضایع بکنید و فوزون طلب باشید طبیعتا جامعه مسیر طبیعی خودش از دست داد در فقره دقیقهائی حضرت مصیبت اعظم رو مطرح میکنم. کنم وانتم اعذب الناس مصیبتان شما مصیبت بزرگی گرفتار تو شده چرا حضرت میفرمایم به خاطر اینکه شما منازل علما رو فراموش کردید و جایگاه و نقش علما رو فراموش کردید به اون جایی که علماء بزرگان اندیشمندان maksud از علماء در روایات ما ائمه معصومین هستن استاق بارز بله و به دنبال اونها کسانی که به دنبال ائمه از از و یاران حضرت حرکت می کنند، به خصوص یاران علمی حضرت حرکت می کنند. به میگن اولامار شما منازل علما رو فراموش کردید و به خاطر همین مغلوب شدید، قالب نشدید. درست؟ اگر شما متوجه می شدید، لعنتم تشوران زالیکه به خاطر اینکه مجاری امور کل کارها به احکام الا ائدل علما بالله الامنا علی حلاله و حرامه یکی از روایاتی که از امام رحمت الله علیه برای ولایت فقید در کتاب خودشان مژدکران همه روایتی که علما همه امور مجاری الامر به يد العلماء الا ائدل العلماء خب چه عالمی الامنا علی حلاله کسی که امین بر حلال خدا و حرام خدا هستند کسانی که آگاه برون، از کنم احکام الهی هستن، کسانی که امین هستند، کسانی که اختدارن با صلابت حافظ دین و حافظ دنیا و حافظ منافع و قنائم مردم هستند شما به جای که این مناظر رو اصابه، به جای که شما بیایید این مناظر علما رو در جامعه حفظ کنید، و جایگاه و نقش علما رو تبیین کنید پشت سر علما باشید اونا رو تنها گذاشتید اونا رو کوچیک کردید و انتون مسلوبون تلکل منزلت شما اومدید سلب کردید این منزلت و جایگاه و نقشی رو که علما داشتن ببینید نظام دینی هم به معرفت احتیاج داره هم به محبت احتیاج داره هم به اطاعت احتیاج دارهم بله. اگر در نظام دینی اشخاص و نژادها مطرح نیستند ها نیستن. جایگاه و توانمندیها مطرحه وقتی میگیم که علما یعنی کسی که علم را میداند عادل است توانمند است حالا از کجاست از شرق غرب فارس عرب چیه شمال جنوب نه مهم عالم بودن توانمند بودن عادل بودن این جدیان یه خاصی داره. درست. اگر بهتاش شما بخواد تامین بشه بعد پزشکان ما عهدهدار امر بهداشت رو درمان باشه. یه آقایی که مثلا فرد بینید دکتورای داره نمیتونه بیاد تو تبا بعد. یا بالعکس. البته تو مملکت ما موجزه است. همه هر جا میرن هر کاری مخوام بکنن. اما این کار راهش نیست. یعنی توانمندی مجری بودن. تجربه‌ی یک عمر زندگی کردن با اون مسائل کسی که میاد فرض بگیرین چه سال 50 سال تو زلد میقوم تمام وقت و فرصت و چشم و نگاش خریت فنده من الانم میخوام اسم بعضی ها رو ببرم من شاگردی بعضی از اساتیدی رو کردم اینا روایات رو از کنم از آدرس خونه خودشون این کی بوده چی بوده چی گفته قبلش چی گفته راوش کی بوده رابی کجا نشسته بود از ازت از از از سوال کرده آنقدر شناخ به کلمات دارن بعضی از بزرگان داشو که ما میخوندیم. گفت نه این روایت ما ام حضرت اینجور ادبیاتشون نیستن ادبیات ادبیات زمان امام صادق نشو شپه شپه زمان امام صادق علیه السلام نیست این اشتباه شده خلط شده شناخت احکام شناخت ادبیات معصوم شناخت قرآن معنوست بودن با کلام خدا آقا چی کار میکنن تیمی هزاهی میرن میان صبح مینا تو مرسی در ازم شب میان بیرون چی کار میکنن میرن اونجا چی کار اینقدر با هم حرف میدن خب حکم خدا نماز واجه بدیگه خب واجه بدیگه اینقدر این گفتن نداره بحث این نیست بحث اینه که رابطه بین انسان است و رابطه جهان رابطه بین انسان و جهان تا عوالم قیب یکی کسی میخواد اینا رو اه... کشف کنه تنها کشف نیست فهم داشته باشه و بفهمونه و اینا رو محقق کنه مجاری الامور جریان همه امور مجاری امور داری خارج نیازها نیازهای اجتماعی نیازهای فردی اینکه که میخواد امور جریان پیدا کنه جریان زندگی دو مسئولیت رو کاملا نشون میده یکی به منه طلبه که میخوام وارد حوضه باشم بدونم که من بعد نیازهای ای رو سلوه کار خودم رو قرار بدم جدای از جامعه زندگی نکنم فکر نکنم حوضه علمی ما باید بدانن اینها حامل وحی خدا فهم وحی خدا و انتقال کاربردی کردن نیازهای اجتماعی هستند و اصابه هم یعنی گروه های اجتماعی تأثیر گذار گروه های فرهنگی گروه های قدرتمند که مردم بهشون ایشون توجه دارن بعد اینا رو پشو، پشوانی کنن، حمایت کنن، اینها رو مطفق کنن در اون جایگاه و نقش خودشون بیستن طبیب تزریقات چی نباشه، طبیب کنار نیفته در واقع داریم که اگر علما مردم بهشون مراجعه نکنن، اون قطعا اون جامعه نکبت زده خواهد شد و اگر قولما خودشونو رو در دسترس مردم مهدم نگذرن آقا میرن مومین به مالک فرمودن شما خود رو در دسترس مردم قرار بده مردم تو رو ببینن با تو صحبت کنن درداشون رو به تو بگن این رو از شما بگیرن به خاطر همین عزت محمد میگه طبیبون دبار رو به احسن. که... اه... خیلی به بود که اومده مراهم خود چه آماده کرده داروش آماده کرده حال آقا سوال از من طلب این آقا برم بگردم ببینم که تو داروخانه چی میتونم پیدا کنم نه مراهمش رو آماده کرده میگرده طبیب به دنبال مریض میره تنها مریض تنها نمیگم نریز بشینه تو خونه دست. اونجا مثلا شکلات بخوره طبیب بیاد التماس بید. نه هم طبیب دوارن به و هم مریض باید خودش رو دردمند بدونه و خودش رو محتاجه به رفعت وجودی بارادم حضرتون این طبیب. چون این طبیب خیلی طبیب زیبای کاربوردی است و مجاری الامور جریان امور دین از چشمه زلال میخواد این آب جریان پیدا کنه به آخرین نقطه باقستان جامعه دینی بله. به همه ی افعاد به همه ی قسمت ها درخت اول و دومی امکانات رو نگیره و باطلاق بشه نه جریان میخواد پیدا کنه بله. جریان فکری جریان روحی جریان سلوکی که الان ما تو جامعمون تو سلوک تو عرفانه های کازه چرا روش پیدا میکنه منون آب سالم نرسیده دلها تشنه انسان تشنه است یکی که اونها باید بخوانی که منه طرح به بله. باید ارفان سالم سلوک مناسب رو بیان کنم ارتباط برقرار کنم حضرت می بجاری امور و لحقام علا عیدل علماء بالله علا حلالهی و حرام اونها که امینند اونها که فهیمند اونها که عهدهدار امرند اونهایی که پاسدار فکری جامعه هستند حافظ مردم هستند حافظ ناموس مردم حافظ قناعم مردم حافظ سرزمین فکری و دلی و سرزمین خارجی مردم هستند اینها باید جایگاه و نقششون بالا باشه مرتفع باشه تا جامعه بتونه از اون جوشش خودش وحله بگیری حال تو قسمت دیگه هم سلامت سلامت بشه باشید خیلی ممنونم آی رجو علی. حالا من میخوام توی بخش بعدی که با اتون گفتگو میکنیم یه کمی با وسعت بیشتری به در حقیقت جامعه دینی نگاه کنیم یه کمی جامعه اسلامی جهانی رو هم بیشتر بهش بپردازیم و این که حالا نقش این علمایی که الان در جامعه اسلامی هستن کجا هست حالا علمای عجیب و غریبی که ازشون حرفای عجیب و غریب هم زیاد میشنن به ملوهای وحابی و تکفیریایی که حالا فتحه های مختلفی هم صادر علم میکنند خیلی ممنون با تو بخش وعدی انشاءالله و امروز در تقویم دل آشغان، روز جوان برومند حسین علیه السلام است روز یادآوری نگاه پدری از دنیا معیوس بر قد رنا و جمال دلارای پسری سراسر نور در آشورای کربلا و به هنگامی را که نزد پدر بازگشت پدر جان ذره سنگین است و آتش ادامه کارزار را مشکل کرده است اندکی آب پدر اندکی آب و پدر خوب می داند که همه اینها بهانه است تا پدر برای آخرین بار زبان در کام او گذارد و شراب تهور معرفت به کامش بریزد بازگرد پهلوان جدت کنار کوسر جامی سرشار کرده و تو را انتظار میکشد این دنیا جای تو نیست و ما نیازمند این آبهای خاکالوده نیستیم بازگرد دلاور، برکه عاشقی است پس چه کسی عاشق تر از تو مرد این میدان خواهد بود برو برو فرزند نام جهان کان شد یک مرد جوان خرج علی ابن الحسین علیه السلام علی اکبر از خیمگاه خارج شد مثل تیری که رهانی شودت چنگ کمان فلمار آهول حسین وقتی چشم ما حسین و علی افتاد رفع شیبت نه به سمان ثم قال اللهم جاءك خودت شاهد باش فقط برز عليهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و برسوله بر چه جوانی اخلاق جنب به پیغمبر از همه جدیتره، قیافه جنب به پیغمبر از همه جدیتره، هر زدن جنب به هر زدن پیغمبر از همه جدیتره. آه یا شعا شبه المصطفا ال دمعي لهون قلب و خفادم صبح نداره اعلم نظرت آی یک نگاهی از روی نومیدی به قدر قامتعللیک بردا خیلی علاقه داره به این پسر خیلی براش تخته از رفدن این پسر به میدان جنگ بر خال سلام عین او و, و بکپوا شروع کرد های جر چه لا هران وسی مولانا نفسی لیلان بالاش درو شبو بابا عین از لری قان با جون و این جوان دست میدان جنگ چه جور جنگیدو و بعد برگشت پیش پدرش و پدر و رو گفت پدرجان تشنگی داره مرا میکشه حضرت ترمود به او در جواب که برو به جنگ طولی نخواهد کشید که سیراب هایی شد به دست گردت سیراب هایی شد. خواج خدا جون منی یاد سال جون Anam خدا جون منی یاد سال جون آنام خدا چوز لرم بالا مچ و زینه بالا مكبر. جزلرین جلده اجتبالا مکبر زینبا خاقلا اجتبالا مکبر بدره خاشمیون میره خیدریون مهر فاتمیون آمد از خیدریون بدره خاشمیون دستیت و تحضیحت و همه شما شنوندگان گرامی شده که اگر قطعی عشقی میریزید برای همه دعا کنید دعا به خصوص برای شفای همه مریض ها و همه گرفتاران در این روز و شبهایی که از ماه محرم داره سپری می شود. کربلا بسم الله الرحمن الرحیم بعد از اینکه در هفتم محرم الحرام دستور منع آب رسید و عمر سعد متأسفانه امتصال کرد و تبعیت کرد از فرمان ابن زیاد و دستور دشریه فرات رو 500 نفر نیرو محافظت بکنند و مانع بشن که امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران و اهل بیتش از اون آب استفاده کنند اقدامی توسط اول فضل عباس علیه السلام گویا در شب هشتم محرم انجام گرفته و همطور اقدامی توسط امام حسین علیه السلام امام حسین علیه السلام در یک اقدامی که گویا بتوان آن را معجزه از ناحیه اون حضرت دانست گفته شده 19 گام به سمت قبله از پشت خیمه زنان گام برداشتند، کلنگی رو برداشتند، و زمین رو حفر کردن آب بسیار گوارایی دست پیدا کردن اصحاب از بزن آب نوشیدند و از بعضی از شواهدی که در این نقل هست برمیاد که گویا یک اقدام خارق العاده بوده که امام حسین علیه السلام انجام داد اما همین مسئله خبرش به گوش عمر سعد و ابن زیاد رسید و او دستور تشدید منع آب رو صادر کرد و لذا اقدامات اونها شدیدتر شد در منع آب از خیام خيام عبدالله علیه السلام لذا عب الفضل عباس علیه السلام این تمثل و تجسم شجاعت همراه با 30 سوار و 20 پیاده و گفته شده با 20 مشک اینها شبانه حرکت کردند به سمت شریعه فرات برای دسترسی به آب اون امر ابن حجاج که رئیس نیروهای موکل بر شریعه فراد بود به مقابل اومد و مانع شد لذا جنگ در گرفت بین این نیروها و نیروهای او و با شجاعت عبالفزد عباس که از همونجا به سقا معروف شد خاطر اینکه در این اقدام موفق شد این مشک های آب رو پر بکنن نیروهای او و قلبه کنند بر نیروهای مبکل بر شریعه و آبها رو منتقل کردند به خیام عبا عبدالله علیه السلام این اقدام موجب شد که به هر حال خیام عبا علیه السلام از مختصر آبی برخوردار باشند تا شب آشورا اما متاسفانه شدت گرفتن من نیروهای عمر سعد از وصول حرم عبا عبدالله علیه السلام به آب مسئله آب رو مسئله مهم کرد در خیمه‌های های عبادلالی سلام و به عنوان یک فاجعه در حادثه کربلا قابل ذکر <تصفيق> بازم با حجاتو اسلام و مستمین استاد لاجوردی در برنامه موجه عشق در از خطبه عزا تبا عبدالنانوسین در سرزمین منابا با توجه به جامعیت خطبه و اینکه سخنان امام خطاب به جامعه جهانی اسلام هست در حقیقت یک کمی قرار شد بیشتر راجع به نقش علماء اسلام صحبت کنیم خیلیش میکنم همینطور که فرمودید کلمات این میمه بسته به یک زمان نیست ولی اون که زمان رو میبین ولی انسان مخاطبشون هست بله. یکیکی گفتار تاریخی و بسته به نژاد و یه موقعیت خاص که مثلا یزیدی بوده از تو کنم که بعدرم بیم تحلیل کنیم که مثلا شرایط ددیدت العرب شرط اون زمان شرایط بسته ای بوده قبیل ای بوده این نوع موزوع گیری این بشه تاریخ وصف تاریخی خواهد شد و تمام خواهد شد و اینطور نیست نگاه ما به قرآن و نگاه ما به اهل بید و نگاه ما کلمات اهل بید نگاه از کنم مخاطب بودن انسان هست مخاطب این عزیزان انسان هستند مصادیق رو تطبیق میکنن یعنید پر که شما فرمودید ببینید دین آمده نور پخش کنه خداوند نور هستیه بله. و انسان هم باید به سمت نور بره و حیات آینده ای انسان حیات و نورانی خواهد بود با نور بعد ببینه، با نور بعد زندگی کنه با نور بعد تغذیه کنه مم. حیات تو نورانی است حالا این به صورت مقدمه خدمتتون عرض کنم توضیحش با آیات و اینها ان شاء خب آشان. بزرگانی که ائمه معصومین در رأس اون هستند بعد این نور رو از خداوند بگیرن و این نور رو تو مردم پخش کنند احکام اسلام نورانیه اقاید انسان نورانیه دعای انسانی که میخواد بخونه اتا از کاری که میخواد بگه ما میتونیم ذکر شیطانی داشته باشیم میتونیم ذکر نورانی داشته باشیم میتونیم برنامه شیطانی داشته باشیم میتونیم برنامه نورانی داشته باشیم ببینید وقتی که دشمن میخواهد در هر لباسی میخواد نور حاکم نباشه میخواد نور رو زیرپا لح کنه لطف و نور الله برفاهم بله اولین حرکتی که می کند اینه که می آید. یک دین بدل می سازد دین بدل بدل و نعمت الله بدل می سازد نمیسته نمونهی که قرآنی بخوایم مطلق بکنیم بنی اسرائیل آمدن از دست فرعون جدا شدن فرعونی که ادعای خدایی می کرد ادلود رد شدن اومدن از دست مسا رفته کوهتور. اومدن چکار کردن؟ بوسال برد شدن میان میگن همو خدا، همون خداست همون اجعلا نالا آله هست کمال هم آله هست اله کمال هم آله ها. ما یه اله هست مثل این ها خیلی دور نباشه دست دست باشه متناسب با ذهنیتون باشه متناسب این با خدای ساخته خودمون شو عواملش یک در ما هست باشه. سامری ها ندقت کنیم اونا که نشانی از اثر و رسول رو دارن اونا هایی که رفتی چیزای حق و از رو کردن این میان از, از اثر جبرائیل میان چیز دو میگه ای خورخوری داره لهو خبار رو این که علمایی که میان دین سازی میکنن علمایی که به خاطر اینکه موقعیت خودشون رو حالا با من علما مطلحن بدترین نوع حرکت اینه که میان دین سازی میکنن ما نمونه رو داریم ببینید وقتی جریان بالندهی اسلام نابرد از زبان ازت امام مطرح شد اول خواستن مهوش کنن لهش کنن با جنگ با همه چی وقت که نشد دین دینسازی رو شروع کردن از بیرون میخواد میگن آقا اسلامی که شما گراش داری حکم خدا یعنی این دین خدا یعنی این جهاد یعنی این القاعده یعنی جهاد چرا سازمان سیام نیام پول خرج میکنه ال قاعده رو تربیت این اینکه دیگه خودشون دارن مطرح میکنن چیزی نیست که ایران بگه بلده. چرا میان جریانات تو چهل کشور که به عنوان ارث کنن گرایش ببین ببین مطرح میان به عنوان جهاد اسلامی این کارهای زشت که یک نمونه تو هیچ دورانی نداریم به عنوان انسانی اصلا, اصلا بعض همه بدتر گفت تو گوهایی که به اون علما مطرح میشه، اون فتاوا مطرح میشه، به عنوان احکام ازن میشه، این انزجار رو ایجاد میکنه اون که گرایش پیدا میکنه به این جریانی که این حکم رو به فزیدت بسیار خطرناک کرد. بدلو نعمت الله کفران و احلو قوم قومهم دار البوار اینها قومشون تو آتش فرو بردن، بد کاری کردن. تدلیس، کتمان حال تبیلی که در قرآن داریم تغییر و تبدیل چهار کاری بود که سر دین ها وردافتن. پنهان کردن، اول نگفتن حقایق. تدلیس کردن، تغییرش یعنی همدان لباس باطل به حق، لباس باطل رو پوشوندن، متشابهات آوردن. باطل رو لباس حق پوشوندن. به تعبیر آقا امیرالمومنین یه تیکه از این گرفتن، یه تیکه از باطل گرفتن، یکی تیکه از حق گرفتن. اقا حجاب اسلام یعنی این. اقتصاد اسلامی یعنی این رابطه بین این انسان ها یعنی این یه خوردش رو حق خوردش رو پاته قاطی کرد اگه قاطی بشه کارایی نخواهد داشت نهایتش هم تغییر و تبدیل اصلا نومدن به تمامه حضره کردن چیزی که امروز به عنوان جریان تکفیری جدایی از اهل بیت به هر نحوی همون مقدار جدایی فتنه میشه همون مقدار جدایی قابل توجیه نیست حالا نهایتش میشه تکفیری درست دین احتیاج داره به بیان دین احتیاج داره به واسطه قرآن سامت قرآن ناطق میخواد حجت ظاهره میخواد اولین اشتباه که بزرگترین اشتباه بود شما اومدید قرآن ناطق رو از قرآن سامت جدا کردید و قرآن سامت کارایی نخواهد داشت قرآن سامه بیانش ناقص خواهد بود. تبیین نمیشه. تفسیر نمیشه. مفسر نخواهد داشت. این نهایت این جریانه. این جریان وقتی تو وقتی جما جدا بشید قیاس میاد. تو فقه هر چیزایی ساختگی میاد. چیزایی که مربوط به فهم ماست. در حال صداقت هم. اصلا صادقانه و ظاهدانه میخوایم حکم الله رو مردم برسونیم از چه منبعی؟ از کی بگیریم؟ امنا علی حلالهی و حرامه کسی که فهمش فهم است. کسی که از طرف خدا عطی الله و اطیع الرسول و علل امر من میکن. از علل امر باید گرفته بشه این چیزی رو کشیه و رو اصرار دارد که مبانی ما باورهای ما مدیریت اجرا به یه العلماء علما الامنا الاخلالهی و حرام از این جهته اگر از مجاری امور رو خارج کردیم در فهم دین مشکل پیدا خواهیم کرد بدعت ها می آید تفسیر به رعی می آید قرآن محو خواهد شد چیزی از قرآن باقی نخواهند بله متاسفانه افتاده قرآن رو خوب چاپ کنیم میلیاردی چاپ کنیم قرآن را برن بخونن حالا میخوایم این قرآن عملیاتی کنیم کنیم میخوایم تو باورها جا بدیم میخوایم قرآن تو قلبها جا بدیم اینه اسلام رو که شما رسول الله فرمودن رحمتا للعالمین اسلام رو که جهام میخواید بگیره ظهور بر همه ادیان داشته باشه قلبه داشته باشه جت منطق اساس دی منطقه اساس دین محبت، اساس دین بالا بردن اجازه نمیده شیش ماه آقا میرن مؤمنین استادن تا حمله رو شروع نمی کنن. میگن یکی نفر از اون طرف بر من برگرده برای من بهتر از اینه که دیم آفتاب او میتابه شما راحت میاییدونم جنین افراد رو میدرید که چی کجای یعنی جهان قطع داشته باشید دسته پلید و افکار پلید قدرت به اینها توان میدن امکان میدن چرا نمیگذرن یک برنامه شما تو دنیا پخش بشه؟ چیه مگه شما از قرآن نمیگی چرا برنامه های فرض بگیرین سیمای جمهوری اسلامی چه معجونی نخفتد که برای اونها بسیار خطرناکه؟ این همه امکانات میدید اونها صحبت کنن خب چه بهتر انسان مستمع کنان باشه انتخاب کنه؟ فیاد تباون احسنه و این آیه قرآن نیست؟ چرا آقای عربستان اجازه نمیدی که در د علمای همه مذاهب کرسی داشته باشم بیان خواهش بحث کنم چطور داره هم به لطی احسن بیان گفتگو کنم مبنی هم قرآن روایت رسول الله باشه در اصلا قرآن شیعی هم اونجا اصلا به امامه ایرانی به فرم امامه ما حساسم یعنی وقتی شما وارد میشین این چگونه به حساب کشتی هست که یک طرف اصلا محفش میکنی. داورم میخرید بعد دستم بالا میبینید میگه این اسلام پیروزه خاقا اجازه, اجازه بدید بیان مردم حرفا رو بشنبن انتخاب کنن بدی ها معلوم بشه من رفتم به مثل حرام خانم ایرانی اومد از من سؤالی که من احکام جواب میدم بیدم آمدن آمد. ریختن آخو چرا گفتم نه نه نه باید بره دائره ما احکام رو جواب اصلا بودم شما رو قبول نداره قلمان شما رو قبول نداره احکا گفت نه حرام اگر حرام و حلال خدا رو کردید چمشیر این منطق نیست و آیه قرآن نست سره قرآن نیست که با برهان برخورد کنید آیه قرآن میگه یا من بر حقم ای رسول به اینها بگو بیاید با هم صحبت کنید با براهین یا من بر حقم یا شما گفتگو می‌کنیم مگه رسول الله با مس... مسییا صحبت نکردند با نجران صحبت نکردند با کفار صحبت نکرد این منطق تشیعی که بحث درس آقا امام جعفر صادق علمای از کنا ببینن خدا رو قبول نداشتن تمسخر میکردن آقا امام صادق علیه السلام شاگرداشون بحث می‌کردن راحت هم می‌رفتن به هیچکدام نگفتن امام بیا این اصلا ببینید دین رو وقتی چهره زیبای دین رو بگیریم. بدترین خیانته. من اعتقادم اینه. وحابیت قطعاً از سهیونیس پس داره. تردیدی نداشته باشید. کاری که سهیونیس نتونست تو سوریه انجام بده. وحابیت انجام داد. کشتار، اگه این کشتاری که در سوریه انجام شد. این کشتار اگه تو هر کشور کافری انجام می شد. قطعاً مورد بغض و نفرت همه قرار می گرفت. وهابیت رو چهره نشون دادم ما داریم جهاد میکنه با چه مبنای قرآنی اصلا نمیگیم شیعی با چه مبنای قرآنی کشتن کسانی که از ملت شما دفاع کنند با چه مبنای شما تو حالا میخواستید قا... اعدام کنید اعدام میکنه حق را کنید. این وحشیگری ها نشان دادن یک چهره غلط مترود چون گرایش به جهان اسلام ایجاد شده بدل بسیار زشتی از اسلام بدل به زشتی از احکام قرآنی که هیچ انسانه که حتی, حتی اونها هم که جانی هستن اینجوه که جنابیان سرشون رو پایین میدازن اینها آدم میکشن جیگر افراد رو میدرن گردن گلوفی هم میکنن مدال هم یک ببینید من یه عمل اینهاست بسیار زشته یک علمای پشت اینا که زشتره دلسته. شما دارید توجیه میکنید. شما دارید قداست به کار زشته اینها میدید. و ما موظفیم اعلام کنیم ایوها عالم، اینها نه مسلمان نیستند، نه انسان نیستن. بشر نیستن. مولای ما امیر المؤمنین. فرمودن. مثل گرگ به جان مردم نیفتید. اینها دو گروهن یا انسان مثل شما یا برادر دینی درسن. اما اخول فی دینه و شبیه لکف مثل گرد بجونه نگاه آقا من مسلمانم این مثلا یهودی بیا مالش و و نه مردم من مخلوق خدا اگر مسلمان نیست انسانه انسان ببینید تبیده چی میگید شما چرا به علی عشق میبرزید علی ما و ما که دنبال علی هستیم اون قائل است که انسانها شریفن انسانها حق و حقوق دارن نبد مثل گرد پنجه بندازیم تو صورت و احساس و خواسته های اونها جامعه دینی مظهر رعفت و رحمت و منطق و برهان خداست جامعه ای که بر اساس دین شکل گرفته، نه بر اساس وحشیگری شما کارای شما دارید میکنه که اجدادتون تو قبل از استام هم نمیکردن بهش افتخار نمیکردن من فکر میکنم مدتی بگذره وحابیت بیان به دخترکشی هم افتخار کنم بله دخترها حالگه نمی‌ذارن درس بخونن برگردن یه کامل دین محاصن نیست تا کف پاتون بیاد دین دی دی در فهم بلنده نه در ریشه بلند شما نه فهم دارید نه احساس دارید نه وجدان دارید شما یعنی خبیصترین. من تعصب نمیگم خاینترین گروه به بشریت گروهی است که خودش رو پرچند پوشی لا اله الا رسول الله شمشیر رو میکشه اصلا این پرچم شمشی پرچم اسلامی نیست درستم آقای لاجوهدی یک بار دیگه اون قسمتی رو که مربوط می شد به علماء و اماموسه داشتن می رو برای اون می خونید حضرت فرمودن و نه مجاری العلماء ول احکام جریان امور مردم ادارت خواهیه و احکام جریان اجراء حکم خدا که نگاه و برنامه خداست برای ما و جامعه ما الا عید العلماء اما چه عالمی الامنا بالله کسی که به خدا خیانت نکنه هفت دهن خدا نذاره هف از خدا بگیرد به خرق برساند الا حلالهی و حرامه حلال و حرام تهر خدا برای بشریت درست. واسطه فهم میخواد و واسطه اجرا میخواد و اینا علما الامنا هستن الا حلالهی و حرامی مقدار دی... خواهر خواهر. دیا چون تا سم خصه بشه. بشه. خیلی ممنون متکرم. ان شاء الله توی فاصله های بعدی واسه در خدمتتون خواهیم بود و بیشتر از کرامتون بهره خواهیم بود و همینطور از خطبه منای حضرت ابا عبدالله نره نری سلام. خیلی ممنونم. در روز خدا بر تو باد چشمت روشن اینک این فرزند توست که چونان شیگر شرزمی میتازد و صف در صف دشمن را هم میپاشد شیر مرد هاشمی سماسمی آفریندت اما اما افسوس آنان که بر روی این جوان تیغ میکشند و کمانها را نشان رفته اند. او را نمیشناسند و آنان که او را میشناسند شیطان چشمانشان را کوک کرده است آه، این این ها را، مگر از چه آهنی ساختند که بر پیکر علی اکبر زخم میزنند اما از شرم ذوب نمی‌شوند این تیرها از شاخه کدام درخت است که به سمت او پرتاب می‌شوند اما در راه آتش نمی گیرند و خاکستر نمیشوند. عینک؟ اینک تنها خاک است که بر بدن قطعه قطعه شده ی علی اکبر بوس می‌زند بر بابا تشمم از این دریا So به میدان چون که میرفتان جوان آهسته آهسته ز جسم شهر برون میرفت جان آهسته آهسته چنان هجران او بر قلب سار و له گران آمد که پشت شاه خم شد چون کمان Oh he's the honest با در بین و تییت تزیت و, و همه شما هم گرامی باز هم بریم به سراغ خود ب. حضرت امام حسین علیه سلام در سرزمین منا که در زمان حیات معاویه ایراد شده و قبل از واقعی آشورا آیه لاجوری در شما میکنم نکته بسیار لطیف اینه که اگر از ما سوال بکنن که بزرگترین مصیبت چیه برای جامعه دینی بله. چه خللی وارد بشه اون اساس جامعه دینی متزلزل میشه و در حقیقت تشتت ایجاد میشه و اهداف دینی نمیشه بهش رسید در نگاه آقا عبدالله ایشون بفرمایند اعظم مصیبت، اونی که مجاری امور جریان همه کارها و در حقیقت و احکام الهی از دست متولیان صالح خارج بشید ممکنه در یه جامعه ای خیلی تبلیغات نسبت به احکام و به عنوان آرمان داشته باشند این خوبه اما کافی نیست بله. مهم متولی و اون کساییه که باید کسانی که باید اهتدار بیان باشند و اهتدار اجرا باشند و خودشون اجرا کنند و نظارت بر اجرا داشته باشند اون متولیان مهمه حضرت به اصابه این گروه به گروه های از کنم تأثیر گذار میگه شما مجاری امور رو از جریان اصلی خودش خارج کردید درسته این نکته ای که شاید تو جامعه ما و جامعه های دیگه مطرح باشه گاهی من میخوام شما رو حض کنم تا خودم باشم دقیق کنید نه شما میمانید نه من شیطان میاد میگه آقای فلانی باشه چیزی برای سه باقی سهمی باقی نمیمون من میام زیاره پار شما رو خالی میکنم شما رو, مثلا رو بزرگ میکنم جریان رو خطرماک میکنم جریان رو وابسته میدم و کجا و کجا میکنم مردم رو میترسونم از دیگه به شما گرهش پیدا کنن و شما عصف میشید زمینه عصف منم میجاد میشی و گروه سومی مطرح میشن ببینید در صقیفه بنی امیه اصلا ارزشی برایشون قائل نبودن اینا تبعیدی بودن رسول الله بعض اینا رو تبعید و حق نداشتن تا رسول زنده است در جزیر پیداشون بشه اینقدر متنفر بود. یعنی اگر شما تو سقیفه میخواستی مطرح بکنی یک روز ابو فرزندان ابو سفیان میخوام بیان رومنبر رسول الله احکام رو مطرح کنن دفاع از دین بکنند شما را اصلا نه تنها ترک می در اینکه ممکن ممکنه اصلا فهم جریان رو داشته باشید مدت تمسخر قرار می چه چیزی تغییر کرده که بنی هاشم رو کنار گذاشتند اومدن غیر از بنی هاشم رو مطرح کردن اومدن افراد از کسان انتخاب کردن که ظاهر اسلامی داشته باشند. تیغ بی خطر باشند از کنم حضور شما کس رو نکشته باشند از اون حضور شما حالا دورانی رو داشته باشن که حتی یک کسی مدعی انها نبود سیدی به صورت کسی نزده بودند علی رو با کسانی که وسط بودند کنار گذاشته مجاری امور رو از دست علما و منها ائمه خارج کردن تعبیری که از ذهن دارم میگن شما این منزلت رو سلب کردید از کار انداختی خودتونم از کار افتادید این خیلی نقطه ای نتیفیه ما گاهی یه سری شبهاتی ریجاد میکنیم حالا من بزنید مثال بزنم اشکال ندارم یه جریان سیاسی مثلا دوران قبل از مثلا این دوران رو مطرح میکنیم میانیم تمام به خوبی همه هست میانیم به نام خودمون بزنیم آقا این تر مال ما بدیاش مال جریان قبلی یا قبلی ایمد بگفت خوبی م... کارها با من بدیاش برای دیگری. این باعث میشه که جریاناتی که تحصیل گذار به اندازه خودشون اصلا به جایی که ما بگیم تکمیل کنیم بگیم برادری تکمیل کنیم مسئولیت پذیر باشیم تو قدرت انتقاد پذیر باشیم تو قدرت حقشون رو بدیم تو ضعف اصلا دلیل وجود جریان های مختلف همین می کنه بره تکمیل هم دیگر به تحبیل از آقا می فهموندن که یه گروه میاده گروه میره سلاحی عوض میشه. افراد جدید میاد خوب افراد جدیدن تو دانشگاه قدیمی ها میرن خوب استراحتی می کنن. میرن تو دانشگاه خودشون رو بازپروری می کنن. قوت, قوت میگیرن حالا میرن یه ارتضاق جدیدی میکنن که توان جدیدی پیدا میکنن عبرتی میگیرن قوی میشن من نیست که حس بشن حتی در رهین کار کردن این جریان جدید اون جریان قدیم میشه می نر بکنه بله بله بله بله بله بله می تجربه اونها رو میشه استفاده کن یا اصلا نشون میره ما میخواهیم از کنم حضور شما ضعف رو پوشش بدیم که نمیزدیم زبانها گویا باشه بذاری زبانها گویا باشه این توانمندی ایجاد میشه مهم. حضرت میگه هم شما اومدید منزلت رو سلب کردی یعنی ائمه رو و علما رو و بزرگان رو از جایگاه خودشون اندادی خودتونم سلب شدید و این نبود دقت کنید حالا من خیلی میذارم اگر با شما فردا من این نبود این توان رو از دست دادن این جایگاه رو از دست دادن این مجاری امور رو منحرف کردن مگر اینکه دو صفت اشتباه داشتید شما از حق تفرق داشتید وحدت نداشتید و اختلاف در روش داشتید حق هدف سنت روشه این نكته بسیار لطیفه منه. اگر ما به حق توجه حق خواهی رو بخواهیم علما یعنی اهل بیت و علما که اینجا مقصود اهل بیت هستند اینا جهت حق هستن و سنت هم روشه شما در سنت اختلاف کردید و در حق هم تفرقه داشت از حق منصرف شد منحرف شدی کنار گذاشتی تبعیض و گذاشتید از علی جدا شدی که حق بود علی میزان بود علی شاخص بود علی سنت فقط نبود علی میزان بود میزان الهی بود شما تفرق از حق و اختلاف در سنت در روشام شما خب یه جریان با اهدافش با روشش به نتیجه میرسه بله. اگر اهدافش عوض بشود حکومت دینی که برای اجرای احکام خدا سبدیل بشه به حکومت از کنن پادشاهی که هدفش عربیسم باشه الان متأسفانه در بعضی از اسلامی بعضی از گروه که حتون اسلام میدونن عربیس رو مهور میذارن اسلام, اسلام رو مدهل دوم میذارن مثل اخوان المسلمی حالا برای تحلیل جریان اخبال مسلمین در جاهای مختلف متفاوت هست اگر اینکه میتونه دشمن در اخبال مسلمین نفوذ بکنه به خاطر شما عراریس رو پان عراریس رو اومدید شما مهور قرار دادید اه. شما توجیح میکنید حرکت ناصر رو تو... ناصریس رو شما توجیه میکنید یعنی بیشتر از اه... از کنم آیات قرآن بهش میپردازید. خب منشه اختلافتون میشه خب روش ها مهمه. ما تو انقلاب خودمون باید دقت بکنیم سنت یعنی روش بله. یون سیستم اون مکانیزم اون نگاه اگر ما هدف رو به چشم دوختیم روش رو ازش جدا نشدیم روش ها رو متناسب با شرایط و امکانات خودمون بروز کردیم تعبد در روش نیست بله. روش شکل عالی است که میشه با شرائبش پرداخت نمونش ما در یک زمانی به العلی ما فرض بگیریم مثلا با یک کشوری ارتباطمون رو قطع کردیم در یک شرایطی که ایران قوت پیدا میکنه قدرت پیدا میکنه اهداف هست هدف چی لا ترکن و الی الضین اولمون اما روشی گاهی روش جدایی گاهی روش گفتگو گاهی روش تعامل گاهی روش مفاقت درسته ببینیم چه مقدار ما قوی شدیم و چه مقدار اونها در موضع تعامل قرار گرفتن دین ما دین متکیه به اجتهاد است اجتهاد هم متکیه به روش است دین ما متکیه به است که به اینها روش ها رو بدانند، علم و عمل رو با هم عجین کنند و متناسب با شرائط و اهداف موضع گیری متناسب با زمانه یکی از بزرگان اهل سنت که از محققین هست میگه علت حیات زنده بودن و شاداب بودن شیعه انصر اجتهاد است اجتهاد بروز بودن شیعه اس شیعه بروزه اهداف از دست نمیده مبانیشو از دست میده اما به شرایط و بهموقعیتها تبد نسبت به شرایط نداره و یک انصر تعیین کننده در تعیین زندگی انسان ها توجه به شرایط و به موقعیت‌ها این انعطاف رو می‌تونه ایجادات کنه که اینکه حقی که حق زاییده شد اختلاف به تعبیر حضرت و تفرقه درسته حالا راجع به این هدف پس سنتی که شما فرمودید ان در برنامه فردا باز بیشتر صحبت کنیم خیلی ممنون فاصله رو دوستان ارادتا فرمان به ما بدن ان شاءالله باز می‌گردیم با معرفی کتاب از زبان وستان راجوردی خدمتتون خواهیم بود تا لحظات دمایق بگردیم چه شماله وای وای ها چه بی درد چه چه ها وای میکنم. من به ذهنم رسید در رابطه با تاریخ آقا عبدالله گذشته از وقایع نگاری که مردم باید بدونن چه چیزی اتفاق افتاده خدای نکرده ما با متر خودمون امام حسین رو متر نکنیم با کیل خودمون از و اندازه گیری نکنیم با کیل حسین خودمون رو اندازه گیری کنیم گذشته از کتاب های نگاری که دقیق باشه که من بازن خدمت رو نرز کردم کتابی که به چراهای مقداری به پردازه هدف آقا عبا عبدالله و به معارف حضرت مانه. یعنی شرح و توضیح از کلمات آقا عبا عبدالله باشه بله. سه کتاب به نظر نبرسید تیترشو مطرح می و اگه فرصتی باشه فردای مقدار اماده کتاب ها توضیح میدم. سه تا کتاب از استاد خودم مرومات الله صفایی حائری رحمت الله علیه انتشارات لعیلت القدر که من شاگرده جز و ایشون هستم و از کنم حضور شما از دورانی که طلبه شدم با ایشون هشت و نهشت داشتم بله. عدبیات خودم را بیشتر از ایشون به ارث برده ولی درست یا غلط سه ست کتاب دارم ایشون در این رابطه یک سری سیری هایی در مورد محرم و آقا عبا عبدالله یک کتاب کوچیکی از آشورا بله خسته ام نیست، صفحاتش هم کمه ولی بسیار گویا است. اهداف حرکت آقای عبد رو توضیح میدن، تبیین میکنند. از کنم خدمت شما، اونایی که گفتن شهادت هدف حضرت بود، ازشون کاملا توضیح میدن، نقادانه بیان میکنن. حکومت حکومت هدفگوده، امر معروف تنها هدف بوده. و میان توضیح میدن، تبیین و تحلیل میکنن. حالا توجه به اهداف و جنببندی اهداف جنببندی خوبی اونجا داره. یک دو تا کتاب هم هست که چهل حدیث بلی. آقا با عبدالله که بیاناتی از آقا عبا عبدالله عبداللهشون انتخاب کردن شرح کلمات آقای ما مصطفی سلام هستی که دو تا هم که ان این دو تا کتاب آخر رو رو از کردم بلی. مطالب رو بعضن خدمت عزیزان شنونده عرض می کنم فکر کنم فرصت آخر باشه بله فرصتمون تمام هست در حد یک دقیقه ناجی یک دعا یک تماشای کوتاه فرمودید که از خونه من از دیروز که شنیدم اخویه شما با این حالت هستن واقعا متعصر شدم امیدوارم که خداوند به خانواده شما عجی بده و بعضی عجیه عجلها عجلها ها عجیه های خیلی بزرگه شاید اون موقع بشینی بالاتر سار علی اکبر بگی اون که اشبه به رسول الله خلقن و خلقن و هم چرا حسینگو داشتی که دیکه بشه خب چی در خدا اینهایی که چی شونه میفهمیم خیلی ارزش بیشه از این کناره مثلا یک جایی میبینی از کنید یه سنگ از صد نفر را حتی صاف خورتو شما. آج چی حالا این همه سنگ بود. این همه سر بود. همین سنگ ها نوشت مال دیگران نیشت برای ما. درصد خلوص اونجای نشون میدن که کهیل مصیبت بالا باشه. خدا دوستت داره. و این درس آقا عبا عبدالله است. من دو مقتل که قبلن می کردم میگن سه جا اگه فرصت داشته باشم یه دقیقا بیشتر شده بگو فرصت بدن دیگه تو ما رو بردی تو این حال رو بیدی میخوایی موقت در ازان در میکنم میگن سه جا هزد فریاد زد ساحل حسین فریاد زد یکی از اون جایی که میگن آقا با عبدالله هفت بار سب عمر راسته هفت بار زدازد ولدی علی ولدی علی که میگن آقا بارا سرکنی نشسته بود صداشو دشمن فهمید فریاد و حسینی که خدای صبره خدای متانته خدای شکر دا ولدی عدد دنیا بعده کرفت توف به دنیا بعد از تو افت بر دنیا اگر این کلام رو از حسین بگیریم به دنیا نمیشه تکیه کرد نمیشه دنیا رو خدا کرد افت بد دنیایی که بخوادی که بشمخای خوبی کنی دستتو میبره بخواهی خوبی کنی عزیزتو میگیره میخایی بهش محبت کنی سیری به صورتت میزنه صلی الله علیهکه یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبد الله حسین او حسین او حسین او قبول وشن شن دانش اوست و راز و, و درسی دیگر از عاشورا بگیریم در سخنان استاد بهشری بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا ابا عبد الله هشتمین درس از آشورا حق گرایی و باطل ستیزیست. جریان حق و باطل همیشه در مقابل هم بوده و هست و خواهد بود. اونی که جلب توجه میکنه اینه که للحق دولت و الباطل جوله. حق مندگاره و باطل رفته نیست. قرآن کریم بهترین وجه این رو بیان کرده قل جاء الحق و زحق الباطل این الباطل کان از حقا. مهم در این میدان اینه که ما توجه بکنیم که امام حسین علیه السلام چگونه عمل کرد، ایشان خودش مهور حقه، برای اینکه حق را در جامعه پیاده بکنه قیام کرد، فرمود الا ترون اله لحق لا یعملو به، شما نمی بینید به حق عمل نمیشه شه، بل باطل لا یتناها و دست از باطل بر خوب، چه باید کرد؟ باید جان را فدا کرد. این سخن با عبدالله علیه السلامه. و خودشون هر از گاهی که زمینه به وجود می آمد، با یارانش صحبت می کرد، با مخالفان صحبت می کرد به این معنا توجه می داد که بالاخره بایستی حق را پاس داشت و حق را طلب کرد و به یاری حق پرداخت. شما ببینید چقدر انگیزه داره امام علیه السلام در شب آشورا، میگه هر کسی که با ما نیست برگرده تا اگر کسانی به ریاست و هوا و هوسی آمدن به هوا و حوثی ریاست برگردن و روز آشورا میگوید هر کس میخواهد مرا یاری کند بیاید که حق جانمانند ما هم انشالله حق و باطل ستیز باشیم همانند بزرگ پرشمدار آشورا حضرت عبا عبدالله حسین علیه السلام انشالله این باشه. say چکر از همراهیتون تا این لحظه به پایان برنامه داریم نزدیک بشیم. خدایا امروز اگه آبرو داریم از نام حسینه این نام رو از دل و زبان ما مگیر و در دنیا و آخرت ما رو از شفاعتش برمند کن دوستان گرامی امشب عزاداری ها در شب تاسوعای حسینی برای حضرت عمل فضل علیه السلام هست